خب خوشباید که کلمه‌ی صبحی که در آیات روایات آمده و زمان بعدی از اعمال منبوه شده از چه ساعت تا چه ساعتیه و اگر عملی که در این زمان باید انجام می‌شد به فراموش بشه چه باید کرد؟ در طول این شبانه روز که 24 ساعته آقا به یکی گفتن که شاه وقت بود گفتن این بچه خیلی بچه فاقولنده و باهوشه و کسی نتونه تا حالا مقلوبش کنه گف یعنی مکتب رفته گفت نه هنوز سنه مکتب نداره خندید گف بیاری نش گف گف پسر جان تو سؤال میکنی یا من سوال میکنم گفتش که هر شاه بفرماید گفت خب شاه میگید تو سوال کن قرور داشت بعد خودش سوال میکرد اون کسی که سایل پیروزه تو مباحثات تو مناظرات اونی که سایل واقف میشه گفت تو سوال کن گفت که میتونی یک ساعت به بیست ساعت اضافه یا کم کنی شبیه فکر خب ابتدا به ذهنش من که چه سالی آخه بعدی چه سال مشکلی؟ که انقدر قدرت داری تو به عنوان شاه مثلا مملکت یه ساعت کم به این گفت نه نه نمیشه پس قدرتت انقدر نیست دا بچه بود دیگه نمیشون بلای سرش بیاره خواه، حالا ای سآل دیگه کن ك... مثلا میتونید یک حرف به حروف معمول اضافه کنی یا کم کنی؟ حروف عربی 28 سه حرفه، حروف پاسی سی دو حرفه مثلا؟ حروف چینی رو یادش نبود که چند حرفه؟ گفت نه، پوش برو، نزش بیرون، نم با این سآلاش واقعیت این که در طول این 24 ساعت بهترین زمان بهترین زمان برای حاجت گرفتن برای به دست آوردن خوبی ها و برکات نعمی الهی دو وقت آخره به اصطلاح ساعت و اول ساعت سهر آخر ساعته قبل از آن صبح بسیار وقت خاصی است خیلی چیزا اگر کسی پیدا کرده تو این زمان بوده و اول صبح بین این که معمولا شیتون اون موقع خواب رو میاره دوزا معمولا یه نیمه به از اون موقع ها میزنن به خط چون همه خوابن میشه بیدار بمونید مثلا شب رو ولی به اون ساعت که میدیسی که همه میفتن و حالا اینکه اون ساعت به د تلاش و کوشش و بهترین ساعت وقتی صحریی نام باید همدیگه رو سنجش کنم خانم ها بیشتر محبتی هستن و احساسی. مرد ها باید سنجش کنه به سنجی این چقدره به همون اندازه محبت کنه. نه زیاد که پر بشه نه کم که مثلا عقده پیدا کنه، کمی و کاستی پیدا کنه جهت روحی محبت بی جا به اندازه طرف مرد گذشت میاره برای اون دختر اون خانم. این دو تا که باید طول زندگی زندگی خیلی شیرین میشه مهربانی به جا گذشت از طرف خانواده ها بچهای سالم زندگی آرام. وprostidan که سوءظن به گناه گناهه و چجوری با این اگر اطمینان نداریم که کسی خطا کرده سوءظن گناه. بزید میاد ده سادام نیست سویزان. ولی روش تمرکز کرد نه وقت بخونه انسان. تا خودشن که حالا بیم. سیکی استام گفته در خورشید چه آن بعد روزه بگیرم در ماه راجع بشه. من چی میذارم بعد روزه بگیرم؟ اگر بتونید هفته یک روز روزای کوتاه و خنک روز بگیره خوبه. ماه راجع باید بخونم. و نه همیشه ماهی است. تو این سنگ بعد خوب قضا بخورن خوب استراحت کنن که توامند باشن برای خوب درس خوندن شب بسیدن که بخن که این روایتی داریم که بفته نوزاد تا پیش از این که زبان باز بکنه فرشتیبان رو میبینه چونو چیزی صحبه. نه طبیعت انسان ظلوم و جهولا مثلا قول انسان ضعیف حدود 19 تا 20 تا آیه هستش که طبیعت خلقی انسان رو خدای متعال فرمایش کرده در ضعف در جهل در هلو و جزوه تا مشکلی پیش میاد پزواج انجام میکنه تا خیلی پیش میاد قلت فخر میدم میگم که من اینم من تونستم این مثلا خیر رو به دست بیارم یا وجود قوه حکیمی الهی است. پس زوال اخلاقی گناهه؟ مثلا خوداشون ده شده که ها معمولا به گناه یا گناه یا به گناه می‌انجامن. ما باید سعی کنیم که یک کمی 5 درصد یاد بگیریم 95 درصد عمل کنیم. هزالتها میره پسیدم که کسی که دچار اینه که زیاد کرده شو با دیگران خانبازه ها و دیگران مقایسه میکنه پرانکه به های پیدا بله وقت آدم تنف میشه هر کسی موقعیت و شرایط خود داره. ما باید با خودمون اونس بگیریم آشنا بشیم بهتری میشه پسیدم تلاوی پای قفت گفتن که در سال بکنن درس خارج ب مثلا دو ساله نه؟, نه درس خارج خارج اون درست سطحه نمیخوام بهم پروسه که خارج نمیرنند. یعنی تا مثلا ده سال اول کتاب میکنن با کتاب دررسشونو میکنن از درست خارج دیگه خارج از کتابه نظر اون اون مدرس که صاحب نظره بل مثلا آخرین نظرها، بیروزترین نظرات اونا هم دقت میکنن ببینن که اوضاع از چه قراره شما پرستیدن که خیلی زیاد با آینده و این فکر می‌کنم و ترگیر مثلا آینده که اون چجوری میشه؟ چجوری از این رقای پیدا هست؟ باید نمازه اول وقت خوند یعنی داره در دستورات که نمازها رو با اراده تأخیر نندازید گاهی آدم خواب میفته مثلا کار استراری گاهی پیش میاد اون نکته نیست ولی در زمان اختیار نماز ها رو اگه به موقع بکنیم بقیه کارها ردیف میشه و انسان ناراحتی و ترس از آینده‌اش کم میشه از بین میره برای از گناه چه کسینی مقدمه شون نشینیم با جمعی که اهل گناه هستن با موبایلی که من رو میبره تو پزه دیگه از مسیری که نمهرمان هستن با اراده نرم این مسیر مثلا طولانی تر سختتر اگر هست نداره مقدمه گناه رو نشینیم خدا رحایی میده شبخان روایتی داریم که که کسی تا دختر داشته باشه بهش پرش پا جبه؟ بله بله داره که اگر مردی و زنی ایک دختر خدا بهش بده اون دختر در آخرت شافی میشه شفاعتش میکنه اگر دو دختر پیدا کنه در دنیا و آخرت زامن زندگی خوبه او میشه و اگر سه دختر پیدا کنه حد برای خیرات و نیامش نمیشه قرار داد سه دختر یا بیشتر شما خورسیدن اون که فقیر باشم خیلی می‌ترسم. چه بکنم؟ بفهمید. همه ما این خوف رو داریم که نکنیم مثلا در آینده، در فردایی یه وقت بهرنج بیفتیم به سختی بیفتیم به نبودی و کاستی بیفتیم این طبیعیه. اما خدا چون هست، امام علی سلام چون هست، ما اون مغرقه دست اون بر بیاد، یه لکلوکی می‌کنی. بغش خدا می‌رسونه. از کردم چند بار تازه تو قوم از این اوتوبوس های جدید اومده بود که سندرگیاش که مثل تک مثلا هم بود چهارا بازار من ایشسته بودم برم منزل هم روی یکی از این رو سندرگیار روبرون بیدم یک پیرمرد مرانی برنشینی لواش کار میکرد ذکر میکرد اون موقع ما بیس و شیشتب مثلا داشتیم سنمون بابا جان سلام کردم بابا جان اگه سمن من داشتی چیکار کار میکردی؟ بابا جان هم کار که الامون میکنم من به سن شما که بودم موقعا به فکر بودم دخترها و پسرا چجوری عروس میشن چجوری داماد میشن آبروم چی میشه از این حرفا حالا میبینم همه عروس عروض شدن داماد شدن زندگی دارن من سخول زندگی من وقت بفیدم و از دست دادم الان باید دیگه وقت رفتن و اینها، تازالو بی یاد خدا افتادم. بله. سلامت باشین. الله